حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روزه بهتر ولک هوادارته چون بلدی بخندی با چشم دل ببازیم با اش دل ببندیم ازما که دلم سبزه پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا نجواک قلب سبز پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا سلام علیکم حالا حفظ این چطور خوبی خوشید سلامت این چه خبرها یه هفته دیگه آغاز شده و یک رادیو پس فردا دیگه برو بریم باش اول هفته سلام کنین همه سلام کنین سلام سلام سلام سلام چه خبره همین دیگه چیز دیگه بونزو. نداریم بگین اول اول خانم ها گفتن اولا خان... بگو برای اول هفته هیچی نداری بگی برای رسانه سلام می‌کنم فقط سلام دیگه سلام جان شما, شما. برجام مبارک تحیاتش برج. برج. هم اینجا ما داریم می‌بینیم ان لطفای خدا اینجام اینجام داریم می‌بینین یعنی آره دیگه برف و بوران نعمت‌های الهی از تو برجام سعید شما؟ منم سلام میکنم بح بح چه صدایی چه صدایی <تصفيق> برو بریم آقا شاعر رادیو پسورده این هفته سروده الان میفهمین داستان پسابرجام چیه چون موضوع من پسابرجامه شاعر راژیو پسورده سروده شکر خدا این روزها شکر به این کام آمده تحریم بگذشت و کنون دوران برجام آمده ارزان شود بازم دولار دارو فراوان میشود مرغی که از اینجا پرید بازم به این بام آمده. بازم دوباره سفره پر رونق شود از پول نفت مهمان ویژه از دمشق از بحر اطعام آمده از بحر آزادی ولی اوضاع بدتر می شود زیرا که رهبر شاکی از نزد اموسام آمده آنجا برای حفظ خود کوتاه آمد رهبری حالا چو شیری خشمگین ز آن دام آمده خوش آمدی برجام ما این بوده از فرجامه ما تحریم رفت و جای آن تحدید و اعدام آمده با تشکرات شاعرمون این هفته متوجه توجه که خب الان در ابتدای دوران برجام به سر میبریم میخوام کلن در مورد این دوره و بالا پاینا حرف بزنیم ببینیم انقدر میگم برجام. حالا چی توش هست؟ دوزار از توش در میاد بزن کفت دست ملت این رکود اقتصادی و منبس های سیاسی و ماجره های پسیج و سفا و معظم لروبت کجا دلمون بذاریم تو برجام. خلاصه که در این هفته پسا جامی هم با ما باشید تا این دفعه با دادن و گرفتن دل و های پسابر جامی زمستونو سر بکنیم. یه تلفن مونده داشتیم از موضوع زیبایی هفته پیش زیبایی ایرانی بود دیگه یه خب خیلی تلفن داشتیم بعد همون که نتونستیم پخش کنیم برای همین یه تعدادی رو که پخش نشده خیلی کوتاه اینجوری میکس و کوچولو و جمع تقدیم شما یه بار تو خیابون خانما خوشترام داد زد تو چنونقدر چاقی؟ فجارت نمیکشی؟ ببین یه چیزی میگم بین خودمون باشه ببقید. من رفتم عمل کردم. من نمیدونم به خاطر حکومت فرهنگ هجاب اجباریه به که پوست ها میکشه میگم پوست که. دیگه طبیعی عمل میکنه اوه چه اولای زیبایی بهت بگم ساید دماغش میفته رو دیوار فکر میکنه برانموتان دنبالشه هااا <تصح> اینم برای اونایی که تماس گرفته بودن دلخور نشن که صداشون رو پخش نکردیم. او چه برفی داره میاد اینجا تو پراگ اصلا یه و... همینجوری که الیام هم گفت اصلا یه وضعیت همینجوریه یعنی اصلا تا زانو آه. بیشتر از زانو تکون نمیتونیم بخوریم تو برف همه گیر کرده یه وزیعت, یه دلتون نخواد ما که به من خوش میگذره البته برفو دوست داریم یعنی من شخصا خیلی برفو دوست دارم یه حال هوایی به آدم حالا حال هوایی دیگه به آدم میده همه جا سفید پوشه شما چه خبرها خوبین خوشین سلامتی؟ چیکارا میکنین امیدوارم که خوب باشین دیگه ما هم خوبیم ما در حال برفوازی بازی همونطور که گفتم این هفته میخوایم در مورد اثرات بر روی زندگیمون با هم صحبت کنیم روی زندگی همگی چه داخل ایران چه خارج از ایران امروز مخوایم سری بزنیم به دنیای پرتلاتم سیاست ببینیم این سازش تاریخی با غرب سر مسائل هستهی چه تأثیراتی روی سیاست داخلی و خارجیمون گذاشته و در آینده احتمالاً خواهد گذاشت پس همین ابتدای برنامه یک سلام و عرض عدوی میکنیم خدمت آقای روحانی و تیم کننده شون آقا جواد و عباس آقا و باقی بر بچه که زحمت کشتن برجام رو در عرصه بین المللی به سمر رسوندن و یادآوری آوری میکنیم که به سمر رسوندن اون برجام با اینکه خب کار بزرگی بوده اما در برابر کاری که در داخل کشور پیش رو دارن برجام اصغر محسوب می میشده و برجام اکبر اینه که بتونن در عرصه سیاست داخلی از پس دل و پس های داخلی بر بیان یه کاری کنن که شیرینی لقب تحریم ها رو یه اده به کام مردم زهره مار نکنن دیگه توکل به خدا دی بریم بریم جلو ببینیم چی میشه دیگه سلام فرشید اینجا تیرونه از صبح ساعت ملیم. پنج پنج نیم با کتف و بار داره میاد بعد شده بارون منتظر با دم سینه هستین نمیاد ولی اون کوها با دم سینه اومده شالکه موفق و سبز و سر باشی اچ HM هستم از تهران قربونت برم اچ HM. ام ضمن تشکر از گزارش هواشناسی جوجی کبابیه این دوست عزیزمون HM ام بعد کنم که این روزا خب نه تنها هوای تهران که هوای خیلی جای دیگه هم همینجور بارونی یا به قول این دوستمون با بالو، و کتف و سرسینهیه و شدت این بارندگیه خب به حدی که در های ایلام و بوشهر و خوزستان و نیمه غربی اصطان فارس احتمال سیلاب وجود داره و البته اینم بگم در شهرهای شمال غربی به نواحی سرسیرتری مثل ارومیه و تبریز و مناطق از شمال تهران این بارش ها به صورت برف بوده اما هنوز خبری از تحتیلی مدارس نیستا؟ دارتون خوش نکنین؟ حالا چون دیگه میگن گفتن این بارشات حوا وسط هفته کم و بیش ادامه داره میشه امیدوار بود که در برخی مناطق نه همه جا برخی مناطق مدارس هم تعطیل اعلام بشه ایوشد ما همینجا سری میگیم خدمتتون اصلا نگران نباشید الان هوا در ریالت ویرجینیا هست من های چه درجه سانتیگراد چه کیلومتر هم در ساعت داره باد میوزه و 50 سانتی متر رو زمینه. حالا حیبت بگه که کجای دنیا سرده اینجا داریم یخ میکنیم کنیمیم از سرسه چهار روز افتادیم تو خونه تکون نمیتونیم بخوریم. چهار درجه زیر صفر اصلا شوخیه. من واقعا نمیفهم بچه ها بگین چند درجه بوده تو این چند روزه لطفا شما شروع کنید منفی هیفده هم بود بله منفی هیفده فیلز لایک منفی 17 بود یا منفی 17 بود منفی 17 بود ولی زده فیل از 23 تیری یه توی هواشناسی استلاحی هست و اسم همی فیل از که شهرام گفت همون فیلز لایکه یعنی اون سرمایه که دمانسنج نشون نمیده و آدم احساس میکنه یعنی مثلا اینجا چند روز پیش آدم منفی 14 درجه بود بعد فیل از مثلا منفی 17 منفی 18 یعنی باد که میاد 4-5 درجه هم سردتر میشه ولی 50 سانتیمت برف خیلی ها خیلی ها توی ویرژینی ها اینجا ما چقدر 5-10 سان سانت کلهم برف اومده اما خانم ها دختر خانم ها قایین پسر ها در دوله, دوله, دوله دولت اوسمحمود یا همون دولت پاک دست قبلی خیلی چیزا دیگه می دیگه بارها میجوه بهش اشاره کردیم خیلی چیزا به این و اون بخشیده شد که نشون بده دولت علاوه بر پاک دست بودن گوشاد دست هم هست ولی این بعض و بخشش یه مشکل کوچولو داشت و اون همین بود که معمولا از کیسه مردم انجام میشد الان به صحبت های یک عزیز مالباختهی گوش بدیم که چطور فرشی رو که به عنوان امانت به موزه فرش داده بوده سر از خونه کی در آورده؟ سر از خونه بانکیمون توی نیویورک در آورده اب آخر سال 89 بود یه تابلو فرشی ترایی تر کردم و بافته شد آوردم از طریق اسفحان به مرکز ملی فرش اسفحان که برای تولید انبوه ببینم بیم تولید انبوه بدن و حتی قرار شد که تحصیلاتی هم بدن بعد از مدتی این فرش ما سر از آمریکا در بود آقای احمد نجات تقدیمه آقای بانکیمون کردن از اون روز حالا من پیگیره این فرش هم هستن بله حال ما همینجا از آقای بانکیمون خواهش میکنیم که فرش این دوستمونو آقای بانکیمون فرش این دوست ما رو برده بیا پس بده دیگه یعنی چی؟ درست آقای احمدی نژاد حالا به رسمی یادگار تقدیم کرده باینا ولی خب الان صاحب شما عقب به فرشش چیکار کنی؟ ما وظیفه همون اطلاع رسانیه و بگیم که یعنی به شما آقای بانکی صاحب فرش راضی نیست ببین گفته باشیم اون فرش الان قسبی محسوب میشه. اگه نمازی هم روش خونده بشه اون نماز باطله. حالا البته آقای بانکیمون مون نمیدونم نماز نمیخونه ما نمیدونیم ایشون مسیحی هم بوداییان حالا هر چی هستن ببین شما تا اون فرش رو نیاری بدی دیگه هر جور عبادتی رو اون فرش داشته باشی همش باطله. گفته از ما گفتم بود خلاصه. نگی نگفتی؟ آقای بانکیمون مون. برسیم. برسونین به گوش آقای بانکیمون لطفاً. دیدم سر و دور تو رو ندارم بیا چه ناز پزنگار سراغ برنامه شماره 970 رادیو پسورد آخ،, آخ آخ آخ سی تا برنامه دیگه بیشتر نمونده ای وای 970 گفتم اصلا خیلی روند شد الان سی تا برنامه سی تا برنامه دیگه بیشتر نمونده آخ آخ آخ امروز شنبه سی بهمن 1394 دیال داغ دلتون تازه نمیکنم دیگه و میخوایم بریم سراغ سیاست در پسابر جام از گفتم نگفتم های تمام نشدنی یک رهبر تا لنگ در هوا شدن یک رئیس جمهور تقریبا معتدل بیانیگه شماره 970 بدانید و آگاه باشید که نظام هرچقدر در سیاست خارجی خود نرمش قهرمانانه نشان داده است در سیاست داخلی سعی دارد از اینور چنان سفتی قهرمانانه از خود نشان بدهد که حساب کار دست همه بیاید پس چنان چه در دنیای سیاست فعالیت می سعی نمایید حد تل مقدور در دوران پسابر برجام دمپر حکومت نپلکید که در غیر این صورت هر چه دیدید از چشم خود دیدندگانید امزاو از دیدن این همه رد سلاحیت متوجه سفتی غهرمانانی حکومت در عرصه داخلی شده ها و فعلا یه مدت دمچک معظم و یارانش نیومده های رادیو پس بر دادا دادا دادا دا دا دا وقتی یه گشایشی مثل برجام تو روابط کشور با قدرت های خارجی اتفاق میفته آدم پیش خودش میگه ایوه خب پس ورز داخلی مملکت هم خوب میشه دیگه منطقه رفتار سیاسی رهبرانی مثل مقام معظم رهبری مملکت ما یه چیزی کاملا برعکس این نظرانشون نشون میده ماجرا اینه که معظم له با اون همه اهن تلوپی که داشت وقتی تحریم‌های های جهانی تقریبا تمامی راه های کس رو بست، دیران رفت جلوی آینه نشست و به خودش گفت سید عذو بی ریخت‌ها پول نفت نباشه یه مملکت که هیچ یه آبادی را نمیتونی اداره کنی دا. اینجوری شد که ایشون خیلی شیک و مجلسی تمام اون پوزهای های زده استکباری و آی میخوام انرژی هستهی داشته باشیم و به هیشکی هم ربطی نداره و ما به دجمن باج باج نمیدیم و این حرفا رو گذاش کنار و از طریق دولت شیخ حسن به قدرت های غربی پیغام داد که بابا شما چنینقدر بیعصابید بید بشید بایم یه چایی بخوریم حلش کنیم این ماجره رو یعنی چی آخرش هم گفت گله به سرم انشالله عروسی پسرمه اون همه دمبل دسته که هستی دست دست چندمشم یا جم کرد یا توش سیمان ریخت فرستاد بردن چم هم روسیه تا بالاخره ما رسیدیم به همین برجام و الانم که پسا برجام منتها بعد از برجام دیگه تجربه نشون داده که وقتی امثال خیالشون از خارج راحت بشه دیگه وای به حال داخل در پسا برجام که ایشون امروز میان میگن حتی کسایی که منو قبول ندارن بیان وای بدن فردا میان میگن من گفتم بیان رای بدن نه که بیان برن تو مجلس که اصلا معلوم نیست ایشون هفته بعد دوباره بیان چی بگن در این باره دیگه و همین دلیلم هست که ظاهرا باید جیگروار بر سر ایشون داد کشید و گفت گفتی یا نگفتی؟ گفتی یا نگفتی؟ گفتی یا نگفتی؟ ماشین مشتیم مندلی ارون و بیما ماشین مشتی م دلی نبغ داره نقاند توش تاش نخونین روز ناور انقدر تو ماشین میگه واسه خودت میگم به زونه تو هم وقت تو ماشین یه دق یه چیزی بخونم چی؟ گلاب بروتون نحلی می چی بالا بیارم. شما این نیستی؟ ایوال بابا خب حالا چی ها داشت؟ تو همه روزنامه بیگه داریم میکنم کی اومده کی رفته کی و خورده چی پس داریم دو... زونه؟ رئیس جمهور کدا؟ تین؟ او, او او او یعنی اومده ایرانی؟ دیگه بیتاره شدیم پس دیگه تا حالا رئیس زمورشون نیومده بود ایران من کفن میتمونم هم چینی بود تینی می هم آدما رو از سین وارد کنند <تصفيق> روسی میگم با شما این دور حرف هستی روز دو بخونین الان یارو سیه این فرزان مرزان سیه این آره همین برضم امضا کردن همون برضم خدا آره این امضا کردن الان یاره این یعنی سیه این یعنی دیگه جنس منز از امریکا ما میاد دیگه من شنیدم بچه‌ها میگن حالا آره دیگه ردیفم سی مالید یعنی نه خب نه دیگه پس چی بود این همه برو ها بالا پایی؟ زونه؟ ها طول میکشه پس اتفاقا چی؟ سر خط که بچه می میگفت یا الان ها هواپیما خریدن نسی که مسافر بری و اینا دیگه یعنی دیگه عشد محشد نگن مردم وقتی خواستن سوار هواپیما شن دیگه <تصفح> والا با این قیمت بیلیت بیلیت ها که فقط با است که این هواپیما رو نگاه ک والا زونه تو داشت یه محشت بخوایی بری بیای سی ست تا پیاده میشی دیگه من خرادم میره بیبره شاب دولزیم چوابم میخوره تازه سرزمش میشه سی ست تومن یعنی <تصحی> چی میخوام بگم ناشت هیش واسه ما چی نیست ما کلا دکوریم دیگه دکور؟ والا به داش تو این روزنامت ننوشه یاران مارانه چی میشه حالا؟ نه؟ بابا خب زیادش کنن بره دیگه چین تل تومن آخه میدن بکننش نفری ست تومن دویست تومن روند شو بره فای کارش حالشو ببریم <تصفح> والا دیگه بریم ما بریم گازشو بگیریم که زنو بطه منتظرن و بریم شاید یه یارو چینی اومده یه فردی بشه ما هم یه سفر باید چینمین بریم ببریم چه خبرو چین مستزم چین جمیرم چین چیم شری کوچینه گِ یی بان تو کا دَ مکنان آنچی شری مردم قصو دَ بیو که من دورِ پیگارِ قرار منو از صدای منو از پسورده پس برجامی من میتونم بگم که این براجام و پسابراجام زیرت به ما رد نداره ما کمکان اعتباط بله. منو با چینی چینیمون حفظ میکنیم کما این که امروزم برادر چینی وارد ایران شده امیدوارم بله. اینشالله که این محصولات خدروی چینی همچنان در صدر فروش ماشینا باشه و حفظ بکنه این بازار ایران رو حفظ حیف حیف از دست بدیم ما هم مردم ایران کم داریم باید این ماشین چینی همچنان باشه بله خیلی ممنونم کلا نافع خیلی از ما رو خب با چی چینی بریدن یعنی بخوایم نخوایم این چین پشت قبولمون هست مثلا میگن با این رئیس جمهور چین فقط سه تا ایرباس پر هیئت اقتصادی اومده که سطر روابط و با ایران افزایش بدن حالا نمیدونم چند وقت پیش بود که صدای روحانی و نوه خون چینی هم براتون پخش کردیم اینه که دیگه واقعا نمیدونیم این چینی ها تا کجاها میخوان نفوس کنن بیشتر آخه جا نمیشه وگه قدمشون سرچشما تعدادشون باشالله اینقدر زیاده که و اما بریم سراغ سؤال این هفتمون شمایی که شنواندهی برنامه هستید اگر خواستید با امون در تماس باشید از طریق راه های ارتباطی ر این هفته به ما بگین با لغو تحریم ها و آغاز دوران پسابر جام و نزدیک شدن ایران و غرب چه تغییراتی توی زندگی شما حاصل میشه؟ حالا این تغییرات میتونه تو زمین اقتصادی باشه و با برگشتن قیمت ها به دوران مقبل تحریم ها یا میتونه باعث گشایش یا انصداد تو فضای سیاسی جامعه باشه؟ دیگه مثلا فکر میکنین در این دوران ممکنه چشممون به جمال مکتونال تو ایران روشن بشه؟ یا نمایندگی اپل؟ تصوری از نشستن تو بوینگی که هنوز مشمای سندلیهاشو نکندن دارین چه بویت نوعی تازگی میده خلاصه این هفته به ما از ذهنیت‌ها و توقعات پسابر جامی و لقو تحریمی و ایناتون بگین تا ببینیم واقعا این همه زحمت و دردسر سر عرضششو داشته یا نه سلام پسر گلم من بح همه بح برنامه ها رو گوش بدم دستم بنده به هر حال میدونی اوضای مملکت با این فرجام و برجام و بقیه جام و اینجام و اونجام به هر حال پسرم بوروغی خودت باش عزیزم کوله پسر خدای نگهدار چک هم فرستادم دوباره اینو به به به بله بورو رسید خداله رس شو آقای رفسنجانی همونجوری روزی که برات چک, ش... چک شما فرستادی شما بوردین بانک پاس شد برای اولین بار خیلی سریع یعنی ببین این اتفاق پسا آن اون چکو سریع پاس میشه به به دیگه اینا گفتیم همه از اثرات برجام سلام همه همگی رو دیگه سری این رد صلاحیت ها نظر ما اکبر جان شما خود درگیر نکن دیگه میشناسی و دیگه روی حساب کل کل با شما هم که شده یه اول میکنه کنه همون سی تا اصلاح طلبی همی تحیید شدن فقط صلاحیت لا میکن موازه به خودش باش دیگه خیلی خوشحال شدیم بازم بیا پیش ما قربونت فیسبوک الفا گفته که زندگی ما اینور آب نه چیزی عوض شد نه تغییر کرد به قول امام هیچی ولی امیدوارم اونجا بعد پرداخت اقساط سوریه و لبنان و در پنجره امامزادگان یه ذره مردم پول بیشتر بگیر. خب البته الان به غیر از فلسطین و حزب لبنان حالا های یمن و شیعیان بحرین و عربستان و اینا به لیست مستحقین و مستمری بگیره جمهوری اسلامی اضافه شدن چشمشون به حال به دست معزمله هست دیگه دیگه معزمله از مردم خودش که خیری ندید جز و پچ, پچ و گرگر و نیشو کنایه با اینا اینه که داره رو باقی ملت ها سرمه گذاری میکنه اخلاقمونو خوب کنیم به ما هم از این پولا میده ببین که گفتم بحبه خیل خوش اومد این آقای امید جیلی یه دفعه همینطوری پا به رنه وسط برنامه پول میگیری نداش، پول می کی میگیره پولو. سرهم به سامی، سامی، این پول رو سامی میگیره. می یه وقتی تلفنار رو تکراری میره یه چیزایی رو همچین اسمیار تبلیغ میکنه اینا پول میگیره. این سامی این کار است. حالا ببین کی میگه؟ انتی اینستاگرام اه هه, هه, هه سلمانی یعنی سه تا اچ داره اچ اچ اچ سلمانی گفته نه برجام نه هیچ جام دیگه ای از دست اینا چیزی جز فقر و بدبختی بیشتر بر مردم در نمیاد آزادی هم که کلن جوکه دیگه نخندونیمون تو رو خدا و ما اصلا اینجا هستیم که بلکه بتونیم برحال خنده ای رو لب‌های شما بنشونیم دیگه چرا میگی نخندین؟ فکر کن در دوری پسا برجام مثلا مردم ایران آزادیشون به رسمیت شناخته بشه، احزاب همه آزاد بشن، زندانیای سیاسی آزاد بشن، همه دیدگاه های اجازه انتشار داشته باشن، حجاب اجباری مثلا لغوشه بشه، همه‌تونن برگردن ایران، می‌خندی؟ میخند؟ دهنه من بود، خدا رو همین خنده هست دیگه، همین خنده، مهم همین خنده بود، باقی شو بخیر. حس فردو رادیو ایمیل ماست دو و و ماست در فیسبوک گوگل پلاس ساند اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید برمون کامنت بذارید میتونید به کانال تلگرامی ما جوین بشید میتونید اپلیکیشن رادیو رو فردو را رو اونایی که آیفون یا آیپد دارن میتونید دانلود بکنید صداتون رو از اون طریق به ما برسونید و یا برنامه ما رو دانلود کنید بشنوید و همینطور رادیو فردارو به صورت زنده از طریق همون اپلیکیشن بشنوید تلفن های پیامگیر ما هم دو سفت چار سد بیست دو یازده و چهار و سی و سه و و هست و اونهایی که از داخل ایران تماس میگی بفرمایید من و این دکتر فالماق و پسر هم که حتما در جریان هستین دوران پسا برجام در عرصه سیاست داخلی همچین طوفانی آغاز شده شورای نگهبان بدون رودربایستی هم طور که هفته پیشم گفتیم امروز هم بششار کردیم کلا فقط نمایندهای اصولگرا و نورچشمی نورچشمی‌های رهبر رو تایید صلاحیت کرده همین مسئله باعث انتقادات زیادی شد یه عده کردن با سوء استفاده از فرمایشات قبلی معظم له که حتی مخالفین هم در انتخابات شرکت کنن به رد صلاحیتو اعتراض کنن و جوری شد که دیگه خود موعظمله به زبون اومد و شفاف سازی فرمودن اینجوری بله بنده گفتم و بازم میام اون کسانی که حتی نظام را قبول ندارن بیان در انتخابات شرکت کنن بله و بدن اما بله بله نه اینکه کسی که نظام را قبول نداره اونو بخوان بفرستن مجلس در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدند آورین آورین قبلا موعظمله یه چیزی میفرمودن کلا دیگه هم قلاف میکردن همون میشد حکم حکومتی یادتون قدیما رو ولی جدیدا انگا بفهمی نفهمی کلاه رهبر فرزانه یه مقدار کم پشمی شده اینه که روز بعد از فرمایشات مؤذن لی که در حقیقت از تظیم شورای نگهبان در رد سلایت اصلاح طلبا حمایت قاطع کرده بود آقای روحانی میره پشت میکروفون اینجوری میگه یه جنایی از تو این کشور ه میلیون ده میلیون جمعیت ما قانون اساسی رو اینجوری میخوایم تفسیر بکنیم قانون اساسی رو اینجوری میخواییم اجرا بکنیم اسمش خانه ملت است نه خانه یک جنا خانه باله. ملت خب با همه بیام پای صندوق آرا چجوری بیام پای صندوق آرا قبلش ما باید امید ایجاد کنیم شعور ایجاد کنیم رقابت ایجاد کنیم خب یه جنا اگر نیست یه جنا اگر هست که خب همونا دیگه انتخابات هفتم اسفند نمیخوام اونا هم تشریف برن مجلس دیگه <تصفيق> <تصفيق> نخیش نوخدی هم میخند خودش به حرفای خودش خلاصه آقای روحانی هم دستش در نکنه والله ما به خدا انتطبقه ندوشیم انتظار ندachim پشت سوال طلبو با این ادبیات با این سرراحت مثلا اینجوری در بیان بربرش این صحبت ها رو ایشون روز پنجشنبه کردن آقای روحانی غافل از این فرداش آیت الله احمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه بیخیال از کنار این بلبل زبونی رد نمیشه که پریونداران مراقب حرفاشون باشن به خصوص اونایی که مسئولیت دارند مسئولان محترم فکر نکنن حرفشون حرف یک شهروند معمولی است شما که اهانت کنید زیر مجموعه یکی پس از دیگری جرأت پیدا میکنن شورای نگهبان عقب نشینی نکرده و نخواهد کرد باله. اعتراض کنید انتقاد کنید اما منطقی نبان میش نیش نیش میاره آه یعنی قشنگ معلومه دلش از این میشوکنای های روحانی خونه ها آقای خاتمی روحانی هم خب واقعا وقتی میخواد با کنایه حرف بزنه دیگه کارش بلده دیگه البته در ادامه آیت الله خاتمی حجت رو اینجوری به شیخ حسن تموم کردن اگر کارگزاری بگه من زیر بار رد صلاحیت های شورای نگهبان نمیرم به زیر مجموعهش هم بگه شما هم وایستید این اسمش تقلبه خب تسلیم قانون نیست کسی که خودش تسلیم قانون نیست میخواد مجری قانون باشه کسی که تسلیم قانون نیست قهران نمیتونه قانونام اجرا کنه این امین نیست این دیگه نباید در رأس چنین مسئولیت اجرایی باشه بله یعنی رسما فرمودن اگه شیخ حسن بازم بخواد از این حرفا بزنه پاشو از گیلیمش دراز سر کنه سلایت خودشم رد میشه باید برکنار چه بره بشینه تو خونه سبزی پاک کنه یعنی یک چنین پس ها برجامی داریم ما حالا باید دید حالا که خره نظام با کمک شیخ حسن و تیمش به سلامت از روی پل تحریم گذشته نظام یعنی آقا و دروبریاش چقدر این نیشو که و زخم زبون ها رو تحمل می حساب احمد خاتمی کارت زرد نشونه شیخ حسن داد تا ببینیم دومین دو کارت از جیب کی و درمیاد. در میاد خلاصه که خدا آخر اقبت همه به خصوص آقای روحانی رو در این دوران, دوران پر پرماجرای پس یه ما از آدمی آدمیست که میخواهد به چشم خود شهاده پیروزی باشند کامران ملک سلام چه خبر ها؟ سلام فرسی جان سلام همگی والا بعد بگم که دو من دو تا خبر دقیقه یه خبر بعد دارم دو تا خبر خوب اول کدوم رو بگم اول یه خبر بود باز بعدش شروع کن تو برسیم به خوب دیگه آره گذشته متاسفانه فریبرز سال کارگردان تحصیل کرده و کاربلد سینمای ایران که فیلم سفیرش بعد از انقلاب یکی از فیلم های سینما بود و سالها هم بود که در شمال ایران زندگی می کرد و از دست دادیم اونم به خاطر آلودگی هوا ساله بعد از فیلم مرگ پلن کار سینمایی نساخت دوستان خونه نشینش کرده بودن فردا ساعت 9 صبح مراسم زهدا با فریدورز سالار جلوی ساختمان شماره دو خانه سینما که تو خیابون وسالتاتوی طالقانیه اونجا انجام میشه روح شاد مام به جامعه هنری تسلیت میگیم خب خبرای خوبت چیا هستن کامران برای خبره خوب بگم اولیش امروز تو خبرم اومده بود که دکتر محمود عزیزی بازیگر و کارگردان تاعت و تلویزیون برای انتخابات مجلس که نامزد چی شده بود تایید شده چه بس انتخابم بشه بره مجلس بله باری کرد. این کجاش خوبه حالا وقت خوبیش ببین اینجاست که تو مجلس نمایشی همه های خوب و کمدیان و بازیگر اینا داریم. به حال جایی کارگردان خالیه دیگه. اما اونجا به نظرم بعض مجلس یخواده بهتر بشه. از اون لحاظ نارس می. خب خبر خوب بعدی چیه؟ خبر خوب بعدی من اینه که بعد از سالها فردا تازه آلبوم سعید شهروز به اسم هفتاد نو تو سراسر کشور به صورت همزمان منتشر میشه که علاقمندای شهروز خیلی از این بابت خوشحال ضمناً فردا ساعت یک تا تو تو فرنگسرهای نیاوران آلبوم با حضور عوامل شروع نمایی میشه که ورود هم برای همگان آزاده بسیار خوب چرا حالا هفتاد نو؟ چرا الان سال 94 و میاد از اون موقع داشته امسید کنم یک چیزی توی این سالات <تصفح> کار نکرده از اون موقع اینجوری مونده <تصفح> بسیار خب ممنونم ازت کامران عزیز باید خدافزی میکنیم تا فردا میریم که از ترانه این آلبوم با نام سوجه رو به اتفاق میشنهیم تا فردا خدا نگفت دارم احوال دل من که دیگه سوژه روزه. بدی چشا تو که دلت ریشه به من خاص شدم پیر شدم پای تووردم با دست تو موهای سفیدم رو شوردم با سلام بسرک و سیه شب را ضمن برابز وحشت از سخنان گوهربار حضرت آیت الله خوابتمی در نماز جمعه دیروز تهران با مروری بر مهمترین اناوین خبری ساعت گذشته آغاز می اظهار نظر فرمانده پلیس مازندران با این مضمون که دو تابعیتی ها ولایت فقیه را تنها میگذارند و توصیه ناظران بیشن که دادش شما همین مسیر بری فرمانده کل کشور میشی پس بگاز انتقابده جو بایدن معاون اول رئیس جمهور آمریکا از وضعیت آزابی بیان در ترکیه و تعجب و تحییر کارشناسان از این که مقام غربی به ترکیه گفت بالای چشه دبروه و آغاز اقدامات بانک مرکزی ایران برای جلوگیری از ورود پولهای کسیف به انتخابات با نظر فعالا نرسه پول کسیف که ای بابا پولتونه یه دقیقه بدین دست سپا همچین بعداتین میشورتش تمیز تمیز میشه <تصفيق> سرخط مهمترین خبرها امروز و امشب را شاملی میشدند اینک مشروع قبرها با چهچهی همکارم بوی بوی با سلام بر گزارش خبرگزاری رویترز، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران و ترکی الفیصل، شاهزاده سعودی هفتاد ساله عربستانی در حاشیه اجلاس داووس با یکدیگر دیدار کردند. بنا به همین گزارش، جو بسیار سردی بر این دیدار حاکم بوده است و در مقایسه این دو مقام ایرانی و عربستانی با هم مشاجره نیز نمودند در همین رابطه یکی از کارشناسان امور مشاجرات منطقه کشور به خبرنگار ما گفت از این پس بهتر است مجامع و اجلاس بین المللی به صورت دو قسمتی برگزار شود و در یک قسمت از این اجلاس ایران و یارانش شرکت کرده در قسمت بعدی عربستان و یارانش شرکت داشته باشند تا اینطور بقاه با. باز هم تکرار نشوند و افزود استفاده از داروهای آرامبخش و شل کننده هم در دیدارهای مقامات دو کشور برای پرهیز از تنش بیشتر میتواند مفید فایده باشد پایان مشروع اخبار <تصفيق> بله همونطور که میدانید نیروهای های امنیتی نظام در روزهای گذشته موفق شدند یکی از مدیران شبکه های خارج از کشور را دستگیر کنند و همین دلیل در خدمت کاشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ هستیم تا بله. در این زمینه اطلاعات بیشتری رو یاری بله. ما قرار بدن بله بندهم خوشحالم که در خدمتی شما هستم بله. و این پیروزی بزرگ ها اومتی شهید پرور تبریک کرد میکنن بله سرنگ ک خب بله. در مورد این پیروزی بزرگ که کم برای ما توضیح بدیم ببینید همکارانی ما در پلیس کشور ورا برادرانی وزارت اطلاعات ام. مدت ها رو این پروژه کار کرده بودن و بله. در یک عملیاتی پیچیده ای پلیسی تونستن این فردا بازداشت کنند. خبه از این فر چ حالات شد ارز کنم نزدیک به چهل صفحه در فضاهای مجازی ها ولی. یک شبکه برای انتقالی جوانانی کشور به خارج خوب خوب. که مرکزی اون در یکی از کشورهای اطراف بود چه باید. یعنی چی جوانان رو انتقال میدادن خارج کی چی به شاخسرنگ سرنگ بله دیگه ببینید این شبکه های ماهواره ارتباطی مستقیم داشتن با چند تا شبکه جاسوسی و آمریکا و اسرائیل ها چند تا کشوره دیگه اینا جوانان رو خارج میکردن تا اونا رو به کارهای غیر اخلاقی آلوده کنن این یعنی چی اخه این سرنگ با ما هر جوونی رو میبینیم سرگردونی یه ویزا یه هفته بر اروپا برگرده. بعد اینا آمینجوری سلواتی جوانان میوردن بی بی. بیرون تا کارهای غیر اخلاقی انجام بدن یعنی البته در موردی جوانانی عزیزمون که شما داری سیا نمایی میکنه ولی اینا هم چنین پروژه‌ای داشتن که خب با هوشیاری همکارانی من توت خونسا شده عجب الان هم که گرفتید بالای صفحه فیسبوک این بنده خدا آیه قرآن زدید و اطلاعیه دادیید حالا بله که اطلاعاتتون نوشتید که با یک عملیات اطلاعاتی پیچیده دقیقاً این گرفتید بس. یکم از این پیچیدگی‌های این عملیات برامو بگی. خب ببینید البته بنده نمی‌تونم این عملیات رو اینجا باز کنم خب ولی به خصوص برادرانی ما در اطلاعاتی سپ ما ها عوامل رو زیر نظر داشتن تا این پیروزی به ما. ای بابا هی ای باز این سرنگ میگه پیروزی باز, باز سرنگ خیلی از این شبکه ها تشکیل شدن از یه اتاق و دو تا دونه دوربین چهار تا کارمن دیگه دیگه اینا چی هستن که شما بخاین کار اطلاعاتی پیچیده بکنید برایش <تصفيق> من واقعا به خاطر این جهلی شما متأسفم آقا جون اظاری نظرم میکنین نه ببین سرنگ و آ... یه چیزی یه من یه فکری کردم و شما فکرم می کنی اصلاطور آره رو می بینم اصلا تو فکر فرو میدم سرنگ ببین من فکر کردم نه تو رو را از راه سرنگی به جای می نه من از راه موجگری آقای پس شما خودت ها با بنده مقایسه نکن من خیلی هم از کار کرد می کنمم راضی هم آقا جون واقعا راضی؟ بله سرنگ بعدت نمیاد هرکی تا رو می بینه رو سریشه میکشه جلو دلت نمی گیرین خ... انگ مثلا رو پیشونیت نوشته باشه یا وا... الاوا این... واقعا ماداری دا بابا آره میگی من دیگه ظاهر دیگه کارم اینجا تمومه سبا سبابا اون فکرمو نگفتم انوز که ببین سرنگ بیا ببین بیرون یه شبکه ماهرایی بزنیم با هم بله بله. من همه اعتبار و شهرتمو میذارم وسط بارو آقا تو هم با چی چی می دیگه تو هم بیا اونجا یه ولیش بگی دیگه شما داور قارتی چیزی اشتباهی خورده اه. حالت بعد از شما سرنگ ببین چیکار من میشم کارشناس پوست و مو و زیبایی خانم ها من چی بشی تو هم بشو کارشناس سیاسی یه چفت چبه یه بینون یه سری فش بده ولی به جونت پولدار میشی ما نه خیر بنظر بنده واقعا شما نیاز به دکتر دارید زنگ بزنم هر گوش کن دیگه بابا این ببین اطلاعات اطلاعاتم خودت دمشینی می‌بینی دیگه سرهنگ مسابقی خوانندگی هم برگزار می‌کنین اکبر میوزیک آکادمی آقا ا... این آقا جون من ات... رفتم آقا ولی شما حتما خودت تا دکتر نشون بده بابا ناراحت نشو, نشو دیگه خب تو هم می‌ذاریم داور میگیم که شرکت کننده‌ای اکبر میوزیک می آکادمی جلو ویژه برن تو بچین می‌دیم وایس سرهنگ عجب آدم بی‌دلوجراتی جراتیه نمی‌ذاره من سرهنگ وایس دان آقایون خانم ها فکر میکنین شما الان کره شمالی چرا انقدر خودش راحته؟ البته منظورم حکومته کره شمالی ها چون خیال معظم لهش از بابت جامعه جهانی و کشورهای دیگه راحته و میدونه کسی کاری به کارشون نداره. برای همین کلا کره شمالی انگار از اول یه رهبر بوده که بعدا دستپا در ورده تبدیل به کشور و مردم و اینجور چیزا شده. البته بگم کره شمالی در عرصه سیاسی یه حزب و یه مجلسم داره که مهمترین کاری که میکنن اینه که وقتی رهبرشون یه چیزی میگه محکم کف میزنن براش حتی مورد داشتیم کسی یکم مثلا یکم کم شل کف زده بوده براش به جرم خیانت به وطن ادامش کردن اینجوریه واقعا داشتیم مااننگ شوی کنم جدی دارم میگم یعنی هر معض لهی دو روز تو کره شمالی حکومت کنه بی اختیار زیر لب زمزم میکنه منو این همه خوشببختی محال محال محال حالا رمز موفقیت کره شمالی چیه؟ اینه که، کشورهای دیگه کاری به کارش ندارن حالا اینا رو گفتم که به این برسم که الان ما در دوران پسا بر داریم به یک سمتی میریم که خیال ما از بابت کشورهای دیگه و جامعه جهانی و این چیزا نسبتاً داره راحت میشه چجوری؟ اینجوری که خب معظمله به غربی ها قول داده که سمت سالای هستهی نره به این شد که غربی ها نه به بهانه هستهی نه به هیچ عنوان دیگه ای مثلا این بهانه‌های واهی حقوق بشری و اینا به جمهوری اسلامی فشار نمی ارن میذارن معظمله ما تو حال خودش باشه حالا چی میشه هیچ دیگه معظمله الان دستش بازه که یه حالی به اوزای سیاست داخلی بده چه حالی بده حالا اینا هم داره میگن برجا می که نکوست از بهارش پیداست حالا باید باشیم دوره هم تا صبح دولتمون بدمه که به قول شاعر این هنوز از نتایج سحر است الان چیزی که مهمه اینه که غربیا باید بذارن معظم له فقط تو حال خودش باشه بذار توال خودم باشم نمیتونم زورکی تو دل تو جاشم بذار توال خودم باشم بخوام چند روزی تماشا روزی تماشا بذار توال خودم باشم قشنگیه صورت تو به خنده آشان به خنده آشان بذار تو خودم باشم من منو چند باشم بذار تو عال خودم باشم نه نمیخوام پاشم نمیخوام پاشم نمیخواد پاشم که چهن دوروم از نیمه اول باشه چقدر راحت توپه دستدار من هم همراه با اون استاتو میخوام که چرا این توپ وارد دروازه نشد یه روز یه تیم فوتبال بود که اسمش تیم امید بود اما ما از اونجای باشم راه میشیم که تو مسیر ناامیدی قدم گذاشت این تیم امید توسط دو تا هاجی اداره میشد یکیشون حاج حبیب کاشانی بود تو هفتو بازی منو مالیکسو تو مساوی هم داشته فهمیدم که برد اصلا نداشته اصلا بازی برد نداشته ایشون یکیشون هم حاج محمد مایلی کهن آخیش چه فوتبالیه که شما از قبل از بازی شروع میکنن به دری ولی گفتن و اهانت کردن واقعا این فوتبال البته یه محمد خاکپور هم بود که حاجی نبود ولی ظاهرا ها رو خیلی دوست داشت اگر نیت همه ما برطرفازی پرچم کشورمون و خوشحالی مردم باشه برای اون کار هر ریسکی ماجراهای عجیب و باور نکردنی تیم امید رو در فیلم جذاب و دیدنی ها و تیم امیدشان ببینید حاجی ها و تیم امیدشان فیلمیست برای همه کسانی که فکر میکنن در ناامیدی بسی امید است تا با دیدن این فیلم متوجه بشن که بعضی وقتها هم در امید یه عالم ناامیدیه بابا به قرآن من فوتبال نمیخوام به دین نمیخوام اروای خواهی که مادرم نمیخوام به جول نمیخوام حاجی ها و تیم امیدشان فیلمی پر از حیجان شکست ناامیدی و با حضور افتخاری فوتبال. بهترین فیلم روزهای فوتبال ایران را در همه ورزشگاه های معتبر کشور ببینید. به تقیه کنندگی وزارت ورزش و جوانان. حاجی ها و تیم امیدشان. فریورز غریب سلام سلام سلام آره واقعا بهترین فیلم فرشید پرفروش هم دید. میریم میبینیم با همین حاجیا و تیم امیدشان را حذف شدیم نرفتیم المپیک دیگه فکر کنم المپیک برای فوتبال ایران راستی راستی تلسپ شده فریورز آره دیگه نرفتی المپیک فرشید جان خیلی هم سوخت البته حالا در پسا برجام شاید فرجی بشه و برسیم به ژاپن و کره جنوبی یا همین قطر که میزبان جام جهانی شده همه اینا دنبال گذاری و برنامه‌ریزی هستن و ما دنبال حاشیه. بله، کلی خبر بود امروز در مورد باخت به ژاپن و از ایران توی سایت های مختلف. آره، اگه اجازه بدی اول جر و امروز آقای محمد مایلیکوهان مدیر فنی تیم امید رو با موجی اخبار ورزشی شبکه 3 عصر امروز بشنویم که در پاسخ به... که چرا باختیم به المپ، باختیم به ژاپن و هستین تو المپیک دوباره میخواد توپو بندازه تو زمین کالوسکی روش بشنابیم ما چرا تو جاملت ها تو سنینه دیگه من تو سنینه بزرگ سال نتونستیم نایی چه بگیریم نا خب نه میدونم من دارم در این تیم سوال نه دیگرم. نه خب به خب این چرا مشخصه ما تو حالا چرا تیم ملی در واقع امید پر رنگ میشه ف رنگ این سای به هر حالال مهم بود ببینیم بر مردم مهم کیم بر المپیک ولی این همه سال نفتیم یعنی واقعا نباید دو تا سالکنه و مارکا جواب برمن کجا این رو گفتم که شما اینجوری تبدیل کردین بله جالبه واقعا جواب دادنشون هم آدمما یاد اوس معمود میندازه ازش سوال سخت می کردم گفت نه من از شما سوال میکنم اینم اینجوری بود دیگه بله دیگه چه خبر پری برس؟ بالا سرشید روزنامه های ورزشی امروز پر بود از تیت های جورو واجور و اینترخم 44 چل ساله ای اولمپیکی نشدن تیت خبر ورزشی پرشید بامزه بود که نوشته اولمپیک کجایی دقیقا کجایی <تصحيح> خب این از حذف فوتبال از المپیک دیروز متاسفانه خبر در گذشت همه این بهزادی رو هم داشتیم فریبورس. آره متاسفانه سایه مرگ تو این چند ماه اخیر سر فوتبالی ساز فرشید خلا مستین حادی نوروزی رضا عهدی و دیروزم به بهزادی سرطلایی که یکی از تاریخ سازان فوتبال ما بود در دهه چهل روح شاد باد خدافزی میکنیم <Sy> تا فردا تا فردا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 روزنامه رسالت امروز تیتر زده بود که خدارایی وظیفه زنانه اما مختص همسر هم. بله خب الامدالله آرائش کردم برای خانمه ها دیگه تبدیل شده وظیفه که البته فقط برای همسر باید انجام بشه باز بگین در جمهوری اسلامی به حقوق خانمه ها توجهی نمیشه بیا روزنامه روزان با اشاره به حضور هیات اقتصادی چین همراه با رئیس جمهور این کشور در تهران تیتر زده بود که هیات 600 نفره چین در تهران اینجوری که این چینیا دارن نفوذ میکنن دو سه تا نسل دیگه همه ایرانیا چش بادو آدم میمیشن آقا 600 نفر چه خبره برنامه امشب تموم شد چهارشنبه گذشته یک اتفاق تلخی در کابل افغانستان افتاد، یک حمله انتحاری بواسطه مرگ 7 نفر و زخمی شدن 25 نفر از کارکنان شبکه تلویزیونی تولوک شد. اون هم از طرف افرادی که انگار جز در تاریکی و مرگ و نیستی و علا اجساد مردان و زنان بی‌دفاع راهی برای گفتگو نمی‌شناسن. غافل از اینکه در دنیای همه انسان ها نابودی و نیستی تنها راه گفتگو و مرگ بایان همه چیز نیست به قول احمد شاملو من عشق را سرودی کردم پرتبل طرز مرگ شبتون خوش بیاشیانه گشتم خانه خانه گشتم بیت و همیشه باغم شانه بشانه گشتم عشق یگانه ای من از تو نشانه ای من